الله. الطيبين المعصومين و آله طیبین و طاهرین المعصومین و ملت درقمت علا اللهم افرنا الله و جمعی المشترین الحمد یا الحمد الرحمن درباره بحث در تجربی بود این که برمو خیلی نکنیم هم استی که از ما خارج شد در حال درباره باره شد از صدت از درقایی مختلف این مسئله مورد بحث قرار میگیره البته با این اصطلاح دائما در ذهن آقایان باشه که یک تجربی هست که اینجا در اصول ما اصطلاح هم بکار میبریم یک تجریح به عنوان عام خودش اون تجربی که در اصول مراد این است که انسان طبق خجت که حالا بر توضیحشن بازمشون رو ارزو عمل نکنه و بعد نشه که اون خجت باطل بوده یعنی به اصطلاح نحسیت خیالی خیال میکرده این کار حرام انجام داده بعد شد که حرام نبود این اصطلاح هم اصطلاحی اما یه تجربیه ها آم داریم تجربیه مخالفات مولاد این معنا شامل معنیت واقعی هم میشه در کلمات اصحاب ما در این بحث من به معنای اصطلاحی آمده و نظام منشع بعضی خلط ها شد مجبوریم مجروری معنی کلماتشون رو متعرض از شد که در بحث تجربی از مختلف میشه بررسی کردی نفتش مجموعی آیات و ربایاتی بود که استدلال بوشد که همون جهت نیت و قصد انسانی هم حرامه هم موجب اتصاف اون فعل به قرمته اون جهت قصد موجب اتصافش به قرمته و حساساً معیار و قرمت همون قصده یه شران ناسا الان نیاته هم. اون نیت این رو ارکس کردیم روایاتش البته بحث بزاره به, به تغییر مرمون شیخ و من جامن بعد شیخ متعارضه لگه این اصافه همطوری که از دوستاد در روایاتی که روشن و صریح و واضح باشه که به مجرد قصد خود عمل حرام میشه و به صرف تبا علیه یعنی عقوبت انصافن حدیث صحیحی نداره و اعتماد بر این مطلب نمیشه که بعد از مجموعه آثار معلوم میشه که اون قصد باطنی اینسان بلا اشحال معصره اما این معنی نیهیت و قصد باطنی چون یک توضیحی میخواد اینشالا آخرای برس عرض میکنیم یه امریز غیر قصد معصیت که الان ما عرض میکنیم یعنی مطرح بالاتر از اینه که اینشالا بعد روشن میشنیم بحث و مطرح بکنم بحث دومان بحث بحث عقلی مسئله است حالا از عقلی کلامی باشه، قانونی باشه، حقوقی باشه، ان شاءالله اینا در خلال بحث روشن بشه. چون مردم ادعی از اعلام در این و این بحث عقلی هم شدن و عادتا ما دیگه در اصول جایی به این پرمناسبتی متارض حیرت عقوبت و, و احکام جزایی نمی‌شیم. حالا بد نیست و همین مناسبات کلیت بحث در اینجا موضوع بحث قراریم. در این بخش چند تا از کلمات رو متعرض میشی بعضی به تفصیل بعضی به اجمال مرحوم آیا شانس نسبانی قدس الله نفسه در اینجا در بحث تجربی وارد جهت عقلی این بحث شدن و به یک مناسبتی انکار حسن و قبع عقلی هم کردن به این مناصرت اینجا بعد چون مطالب نسبت لطیفی دارن و البته ایشون در خلال این شش جلد هاشیشون این مطلب رو کم و زیاد متعرض شدن و جواب تفصیل و اجمال نسبتا اینجا تفصیل بیشتری و به مناسبتی هم در همین جلد که الان دست منه در بحث و ایشون باز هم در اونجا متعرض شدن از 17 سابقا کنید اجمالا 17 اونجا هم متعرض بحث حجیت و, و مناسبت حجیت ذاتی که آن قائل بودن اون بحثش شذشی که من نمیخواد حالا به اندازه امروز تفصیل عبارات اما یه نذار بیشتر عبارات رو بررسی میکنیم در صفحه 28 از این جلد تا تقریبا بله چون خیلی طولانیه بله تا صفحه 36 آخر مطلب بعد هم دو مرتبه باز دارند. یعنی تقریبا میشه تمام بحث ایشان اون نکته رو دارن و به سرزباه های مختلف بحث هم اونیشی که به کتاب کفایی آمده نمیشه که همین طریقه خاصی که در اینجا دارن در طریقات عادی آتیه هم دارند. ایشون برای نکته ایشون نکات لطیفی داره این عبایتیشون خونده میشه بعد از تحلیقات الان بعدش هم در نتیجه نهایی انشاءالا که جمع بردیشون تفصیل و ظالک ان نسته غاقل اقام علامه حکم مولا سفه بیستنش جلد سه از این چاپ جدید از چاپ قدیم جلد دو میشه چون چاپ قدیم سه جلد و این چاپ جه هر جلد دو تا کنم شیش شد اما به جهل شارع اون به حکم العرب مراد از شارع، مراد انبیاء الهیست نه خصوص قیلن ما. فه امکان به جهل شارعه کما خوب احد و طرق هیفی محله اگر به جهل شارعه باشه استقابه و قوط ادام و افاده و شیخ و رئیس سل اشارات در اون نمت تاسع در مقامات آرفینه بعد اشارهی در راجب به سنو اونجا این بحث داره و قیل و غیرها غیره ها فهینه در اینجا حاشه نوشته جلده سی اشاره ها سر اشاره مرور صفحه استیزه دستاده که هستم در زیر نمک تاسه اگر ها مخواستن نگاه کن اگر ایر این ایرین چاخت نستونگی و غیر او غو فی غیر ها اشاره دوم سه در, در نمک تاسه فهمینه از لا مختزی الاستحقاق الاقا اگر به جعل شارع باشه دیگه مختزی نیست در واقع تجریح چون مخالفت نگردیشان ایزن شارل نمیجعل العقاب الا على المعاصي الحقيقيه لهكمه چون بر معصيه این تعبیر معصيه حقیقی در مقابل تجری که تجری معصفه خیالیه لهكمه البته این خیسه لا لامعتزل قابل العقاب ایزن شارل این اینجا الان اینجا شو اجازه منظور گونه ان گرفته از چند تعلیقات مختصره ب این شو ببینید در جنبندی نهایی الا علی المعصیت حقیقی لحکم این مبنیست بر این که این آیات و که ادعا شده افتدارتش تمام نباشی یا سندش یا دارتش تمام نباشی و حیث الله حکم فی المورد فلا چون اقام چون حکمی که نیست خیال کرده حکمون ولم یه رزم نشاره جعل ال على مجرد تجربی این بحث اولی که ما مطرح هم این بود که روایات داریم که در مجرد تجربی اینجا مجرد تجربی مرادش معرف خیالیه به اسلام. و به بیان اوفا یه نارو بخون میگه. این دیگه حالا خدا آن مراجعه خواهند یکی نکتی نداره که بخون, بخون این به هر حال اون چی که قابل چون یا تکرار یا نکتی خاص نداره و این کانال استخداخ به حکم الى عقل که مراد در اینجا عقل عملیست مرادیشان که بخش به مدون باشه سیاست مدر چون عقل عملی یا اخلاق هست یا منزر منظر یا سیاست مدر این بخش از عقل عملی کماهوه ظاهر و مشهور فهین ازن لایم به شبه فی استحقاق لعقاب علا تجربی این شبهی نیست لاتحاد ملاک فید مع از الواقعیه چون نکتش اقدام بر مخالفت مولاز در هر دو هست این شوبه معروف در قرمت تجری همینه یعنی بحث معروف همینه چون اقدام بر مخالفت مولا هست نهایت اینکه در که مطابق نرادن در یکی نیامت بلا در آمزان در نیامتن تأثیر ملن. بعد ایشون اولا این مطلب که برای اقدام باشه نه برای مخالفت واقعی آنها از راه های متعددی رفته یاره بعضش به این مناسا اینجا میکنیم بعضش هم در کلمات شروعی خوبی میخوایم تراوشش. بیان او اینا لقاب علی المعاصیت واقعیه. یعنی یشون از این راه پیش میاد که لقاب بر معاصیت واقعی باید به یک نقطه ای باشه. یک لیست لغزات مخالفه علی امر و نه. و خاطر مخالفت نباشه. دو اینا نکته ایه که بعدشون نمی‌نداشته‌اند. ولال اجل تفریق قرض مولا به موقع مخالفتون و تفریقو مثلا گفت برو آب بیار آب نایور دین تفریق قرض مولا شود نقیه عقاب نباز این باشه تفریق قرض مولا باشه ولا لکونه ارتکابن لمغروز المولا به موقع و نقی شنا باشه ارتکاب مغروز مولا باشه دلیل ایشان لوجود الكل فی سوره الجا چون اگر انسان جاهل بود به ارتکاب مخالفت مولا کرد من در صورت جهل باز بگیم اقام مترتب میشه در صورت گه نمیشه اگر نکات این باشه یکی ذات مخالفت یکی تفیط غرض مولا ارتکاب مبهوض مولا یکی از این نکات باشه تمام اینها در صورت جهل وجود داره در صورت که در صورت جهل اقام برداشته میشه و پس از این سه نقصه نکته که نه شد یک نکته بلکنه یه بل حتکن مثل المولا و جرعتن علیه این نکتهش اینه این نقطه اگر شد ولذا در حال جهر این نکته صدق نمی کنه حتک حرمت المولا نیست جرعت بر المولا نیست حالا دیگه اینجا تعاویر آقایان مختلفه مثلا حد کن لحرمت المولا داره جرعتان علی مولا داره رسوم عبودیت داره زیر رقیه داره لباس بردگی به عصر رقیه داره بردگی مختل و رسوم عبودیه اعظام المولا و عدم الخروج معهو انزی رقیه یعنی میشه به این که دنبال این بحث میسه باید اصلا نه تنها مخالفت مولا نکرد و حق و قرمت مولا نکرد تعظیم و اعظام مولا هم باید انجام داد. فل اقدام علا ما احرزه انهو مبغوظ المولا خلاف مختزل عبودیه این نکته اینه پس نقطه این که اسیان و معصیت واقعی عبوبت داره اینه مخالفت با مولا حق و قرمت مولا البته ایشون تا اینجا آوردن در وصف اصلا در ذهن و وارثان حرف یا تدریسا یا تدرسان در کفایه ظلم علی المولى اصلا به ظلمم اندر علیشون که غیر احترام ولیشون ظلمم داره و هو به حد کن لحرمتی و ظلم علی این یک ظلم بر مولا به خاطر اینکه ظلم بر مولا بودن اصلا این رو ایشان در اینجا جزء احکام عقل گرفتن خوب دقت بکنید ما همچه یواچه ها از این بحث میشیم حالا فرض مثلا مراد از مولا در درجه اول همین موالی و عرفی باشه که انما به ذهن آلان بزرگان این طور بوده که اصلا مخالفت برده با مولای خودش این حق که بر مولاست به حکم عقل و جره از عدل عدن مولا خروج اون امرسوم العبودیه و به حکم عقل این مردوده حالا من همیشه عرض کردم واقعا یه مقدار از مبارس و اصول ما رو الان بخوان در دنیا های آزاد ترجمه بکنن واقعا یه که میخواید شبه نیست بعد ایشان میپنند به حال در حکم العقلی مند ال احکام العقلیه داخل فلقضای مشهوره تا اینجا یک بحث بود که ظلم برمولا است بعد وارد بحث معروف و حسنقوف عقلی میشنیشون معروف بین مخصوصا معتدله که قائل به حسنقوف عقلی هستند. به خاطر ذاتی بودنش به اصطلاح من بعد عرض می کنم چون خود ایشونی توضیح داره ما می توضیح داریم می این را بعد انشاءالله المستور فی علم المیزان فی باب صناعات الخمز می در قضای المشهوره که در باب صناعات الخمز از در اینجا ایشون تشریف اون صنعت رو نمی ده. اما خب اونایی که مشهور قائلا در برهان در صناعات البرهان ایشون بخواه در صنعت برهان داخل نشه رضا تعبیر کرده صناعات همز خیلی اجمال آورده این که بر بگم. و انصال ها به قضایی هم ما قد بقد علیه آراء و اغلا لعموم مساله ها ها به حفظ نظام و بقای نقضه ها از چند صفحه قبل بحث حجیه هم از همین احکام گرفتن هم. از احکام است که برای حفظ نظام اینجا قسم و قبل هم از همین احکام گرفتن هم. اون چی که در اینجا که مثلا فعل عدل حسنه یا ظلم قبیه این هم جزو آرای اوغلایی که من شیخ ابن نظام داره و لولا لختل نظام یا به اصطلاح منطقی او جزء قضايا مشهوره گرفته بعد و اما عدم و کون قضیه حسن العدل و قبح الظلم ب... البته این حس به معنای کونیی به حس و اصطهف علیه المذح و زن این اشاره است اون اصطلاح معروف که این حسنقوفه اقلی گایی معنی ملایمت و عدم ملایمت گایی معنی التزاز و عدم التزاز به این معانی ثابته، اینکه انسان لذت میرمه بحث حسنقوفه عقلی به این معنی است یستهق قلمد با یستهق بازن اقلم با قطع نظر از بود. که اشاره نمیگوستن نه لا یستهق با قطع نظر از ثبت معتدله و عقلی قائلی این در اینجا منکر میشن البته ما در بحث‌های صابق هم به مناسبتی عرض کردیم اشائره که منکر حسن قرن عقلی میشن خب این رو انکار نمیکنن که اجمالاً ما در فلسفه کازاتون حسن نمیبینیم مثلا اگه انسان راست گفت مثلا بچه باشه واسهگه پدرش میگه بار تلا راست گفتی سر راستویی هستی اگر دروغ گفت تبیهش میکنه میگه چرا دروغ گفتی کردی این را اجمالا اشائر منکر نیستن خوب دقف بکنید چون الان خود اشعار فعیلی هم من در همی کتاب های معاصرین اهلستان نرز شیخ هرطر صادق سلسلیم اینشون صدی هم کی دیگه وجدان اخلاقی یا زمیر را منکر بود بوینا واقعی نزد اینا منکر اصل این مطلب که ما بعضی از افعال را حکم بحث حسنش کنیم یا خوبیش نیستن و که از اجایب کارشون تفسیری که میکنن چون اینجا از داره دیگه تفسیری که من عرض بکنم تفسیری که برون میکنن که خیلی شبیه تفکرات فعلی قرمی ها تفسیر بر اساس های شرطی شده از درمان شناسی به سایل است یا دائل الحافظ المشروض حافظ با هی حتی و فیل وزه مختر را حافظ در لقت فالسان انگیزه این لغت عربی جدیه الحافظ المشروض همون انگیزهای شرطی شده که سال معروف یک تغییر رو گذرشته بود و زنگ به صدا در آب منقذا برایش میورد بعد از 21 بار ذکل آب دهان سگ میذنه قضا هم به خاطر زنگ دوران به به سراغش این اصطلاح هر انگیزا... یا به اصطلاح ما دوائی غیر طبیعی یعنی انسان یک دوائی طبیعی داره این طبیعی داره قزاری که نیست اصلا مثلا دهاب جنبش راه میاده یک دایی غیر طبیعی داره که با رقص درستش میکنه مثل که هر وقت میاره زنگم بزنه بعدی وقت زنگ بزنه قضا نیاره اینجا در کتاب من از کردم یکی از اجایب کار واقعا مثل خودش در کتاب المستقا المستقصا در اصول مال قضالی در عوائل جلزه اول این خیلی عجیبه است در اون زمان ایشون تفسیر میکنه حسن و عقلی رو به انگیزه های شرقی شده یعنی میگه ما چون از بچگی، وقتی انسان دروغ میگاه و رو کار بدی کرده. این اینال میتون دروغ بره ال دروغ بد نفسی. این چون چند بار تکرار شده دروغ گفتی یا پدرش ختل داده یا مادرش شدری داره این رفت ایجاد رفت شده بین بد بودن و دروغ و ال دروغ فیسه بعد کلی در اون زمان ها تفسییر که ایشان برای من. اینجا من... خب مشهور به ممنتظره ذاتی است م اینجا معرومه های آشانسم، ذاتی بودن امکار میکنه جز قضایه اجتماعی جز قضایه اغلایی قرار میده به جای عقلی وقت ایشان حالا بیه چون استدالت هم من نهارو بکنم فلوج و فی مواد در برهانیات چون صناعات برهان هم چون اگه در و ماراتون باشه به اصطلاح در یقینیات داست، که ایشون تعدید که منحصر از همه به ضروریات سه فی اینها اما اولیات که کل الکل از زمین و کون نقل یا اصلاح دای اشتماعان اصلاحات عدم اجتماع نقیزه اصلاحات عدم تناقض و اصلاح یا حسیات که یا حس ظاهری باشه که مشاهدات باشه مثل حاضر جلس عبیر یا حواس باطنه باشه که اصلاحاً وجدانیات بشنگن مثل به انرانا علمن و شوقن و شجاعتن البته اینها خودش هم باز بعدها محل شباهاتی قرار گرفته چون مثلا این که ایشان جز به گرفتن جز یعنیات به اصلاح قرار گرفته همین بحثم داره که ما حتی در حسیات خطا حس داریم بازه خود این هم باز محل کلا میکرد شما اگه یک لیوان آب داشته باشین یک قاشق توش بسارین اون دسته قاشق تو لیوان شکسته میبینین این کسار نور به اصطلاح خب این قطعا خطایه هسته اون دستشی ترسیم کج نیم اما شما تو آب اونو کج میبینیم اون فطریاد یه القضا یه قیاسات آمه ها که مثلا عربعه زوجه چرا؟ چون زوجه هر هستیه که منقسم بشه به زهرز مساوی زوجه خب عربعه منقسمی که زهرز مساوی یا تجربیات مثل حکم انا و امن سخمونی ها با قولی مثل آستریم این تجربیاتی نظر فردی میگه سرزمین آسیاییی سردونه و آسیری میگیم کروشاتر باشه مثلا آستری میخوره برای سردنده به تعبیر ایشان یا متواترات که حکم به وجود مکه منش خودیش مشترک نشیده از اساس که به وجود مکه یا حسیات موجب یقین یعنی حسیاتی که مبادعش خیلی قریبه به یقینه به حس مرزد ها. اگر همس مباده شیخ قریبه به حس باشه اون هم جز اوناست که حکم اونا به نور نورالغمر مستفاده من الشمس به خاطر تشکلات بدوی و هلالی و عشق ایشون اینشون این مطلب رو آوردن و بعدشون بیدن و من الوازه این بعد از اینکه این تفسیر کردن ضروریات ست یا یقینیات و یا برهانیات رو فرمودن من الوازه انستحقاق المدهه و زن خیلی یک چیزی بین ما بین کلام اشاعره و معتذله است به اضافه علال عدل و ظلم لیس من الابولیات یکی یکی نردی کردن یا آنه میتونم مراجعه افرادنون خیلی ما به احترامشون بودیم از اولیات نیست بعد میگن لیس من الهستیات لیس ها اون لیست لیسه هاش رو بعدشون از ایشون بردیم خودشون مراجعه و اما حدیث و کون و بسن الادله و قوه ظلم ذاتی است اما اینکه اینا ذاتی نیست به چه جهت چون اکثر ما هم سوال در بحث واجد ارزش ذاتی در اصطلاح اینها به در اسلامند چیزی ها به دو سر ذاتی معروف کتاب عیسا جوجی یا صناعات به اصطلاح کلیات خمس تقسیم میشه که تقسیم میشه به جنس و فص یا ذاتی در کتاب برهان نمیشن فلیس المرادمن از ذاتی ماهو المصطلح علیفی کتاب کلیات که ایساقوجی باشه ایساقوجی در اصل از عرستو نبوده بعدها اضافه شده لوضوح ان از تحقاق المده و از زم لیس جنسن دل... و را فخلا ولیس المرادمن ماهو المصطلح علیفی کتاب کلیات که در اون کتاب ایساقوجی اینجوره در کتاب براهان هم ذاتیه باید که از نفس مقام ذات میشه مثل این که امکان از ممکن انتظار میشه در مقابل اون انتظار که عرضیه مثل فوقیت صرف این که میگن سخت فوق سر من این ذاتیش این هی ای ای. چون از ذاتش انتظار نشده سخت رو به قیاس من در نظر گرفته انتظار فوقیت کرده اما اگر ممکن رو در نظر گرفته بید یک وقتی نبوده برد شده ازش انتظار امکان میکنه لعنه ذاتی هنال در کتاب برهان ما یکی وضع و نفس شیفی صحت انتظائی من انتظائی ذاتی کل امکان به اضافه تیل انسان مثلا و لا کان الانسان پی حد ذاتی این ما باجبه رو نموتنن خب این هم اون شش تا دید ذاتی هم چون ذاتی دو تا بعد در این دو همی آیا ما خسن رو از عدل از ذات عدل انتظار می و من الواضح به تعمل انال استحقاق المذبور یعنی استحقاق مد و زن. نه ملائمت و عدم ملائمت چون از کی ملائمت و عدم ملائمت رو خود از شاعرم معنا نه به معنی لذت و عدم لذت خب معلوم ما به لذت نه به معنی یستهب قلمت و یستهب و به حکم عقل قبل از ورود شر اونا هم تیدم دارن مثلا بدون شر هم ما چین حکم رو میکنیم این مرادشون به ذاتیه در اینجا و من الواضح به تعمل ان ال استحقاق المزبور لیسه کلاله ذاتی هم نیست به کتاب برها لان سلب مال غیر مثلا مقولتون خاصه به هسته به انها تصرف که اسمش خاصه و به اضافه الى کراحت المال چون مالک راضی نبود این کراهت هم خارجتون ان مقام ذات تصرف اینم که در ذاتش نیست این مثل سخت به نسبت فوقیت سخت یون پس قصد بودن انتظار نمیشه از ذات اون تصرف و به اضافت الى ترکت به اختلال نظام حلی ابنوه بله ما مثلا یه میگیم شما آمدید مال این آقا رو ببینید بدون اجازه و با کراحت اون تصرف کرد قصد ببینید اون عمل رو به اضافه نگاه کردیم به ذات عمل نگاه نکردید. عمل رو به اضافه به کراحت المالف این قسمون همون عمل به اضافه به مشتمه و نظام مشتمه شده از که مدرشون از عقل عملی سیاست المدونه در اینجا اسطلاح برای سیاست المدون و اداره جامعه همون عمل ظلمون موشتری شد؟ پس شما عنوان ظلم رو از خود و ذات انتظار نکردید آمدین عنوان به سانلی اتضاع کردین بل قیاس الان کراحت المالک قصبون بل قیاس الان اختلاف نظام ظلمون و, و خارج هم مقام ذاته ان انهو مخبلون به نظام این که شما مال دیگری رو بگیرین و تصرف بکنی بدون اجازه او جامعه رو به هم میزنه نظام انسانی رو به هم میزنه مخلن به نظام وزو مقصدت این این داره مقصده ای فکیفه یون تزاول استحقا مرادش علی فلان گفت که بجیه مضافانه دیه استحقا قول مده و زن فکیفه یون تزاول استحقا المتفرع علا کونی خستن و کونی مخلن به نظام کیفه یون تزاول مقام ذات تصرفی مال غیره این از مقام ذات مثل امکان نداره ممکن نیست به انسان نیست مثل فوقیت سخت نیست صخ به معنی فوقیت صخ به معنی انتظار فوقیت شما صخ در نظر گرفتید منم در نظر اشش فوقیت این مال خود سخت نیست ذاتی نیست التزامی نیست ما نخی هم, هم همینطور شما عمل ببینید اون آقا کتاب اینوار برداشته باز یک مقوله از مقوله این ازش ای ای انتظار می کنین به لحاظ کراهت مالک پس به لحاظ اینکه که افراد بیان بدون تسل... رضای مالک این کار رو بکنه به نظام ظلم و و این رو شما این لحاظ انتظار کرده بل مراد به ذاتیت الحسن و قوم مراد در اینجا ذاتی بود و معنا نیست کون الحکمین حکم به حسن و قوم عرزن ذاتی است یعنی چه عرزن ذاتی هست به ان به عنوانه و ظلم به عنوان یه کما علیه ما به استحقاق المذهب از زن مندون لحاظ اندراجهی تحت عنوان آخر این مرادشون اینه و یک اضافه ای هم داره مرادشون اینه که به تنهایی هم کافیه عوض هم نمیشه این قیدم به اضافه میفرمونیشون خوب بود چرا؟ شد یک تقسیماتی اصلا من نمیخواب باردون بحث بشم خیلی روشند نیست و خیلی هم نتا نداره یک تقسیم معروفی هست اینطور که بعضی از افعال فی نفسه به عنوان مادام مثل قلع عنوان این علت تام برای مرد و زنه و بعضیا ها و بعضی ها لا مثلا لا اختضاعی هیچی نداره سه این تقسیم میکنن اونی که علت تام هست به اصطلاحشون این کهشون میگه در اصطلاح اونها مرادشون ظلم و هر جا اعله صدر بکنه یاد بگیرین که اعله صدر و بحث دیگری هر جا اعله صدر بکنه من اعله قبل اع حدا نمیشه جای عزل باشه و قبیل باشه این مرادشاله چون نوشته به دون لحاظ اندراج اندراج و خود این عنوان هر وقت صدر بکنه مخاط ذاتی باشه اون معنا مخاط نباشه در قسم دوم نه ابتداس اصل صب فی و حوصل داره لکه ممکنه صدق صدقی بکنه و چه گیم صدقون حالا صدقون لکه پی این پینسته هم قبیل باشه رو سینگه صواب حلاق شخصی بشه خوب دقیق بکنه صدق هست اونجا جا حرفشون اینه که مادام عدله نمیشه قبیل بشه خوب دقیق کنه اما صدق چرا مادام صدق هم هست منظوره که قبیل بشه موجود حلاق نمیشه کذفی نفسه قبیه لیکن این علت تاروه نیست چرا؟ چون با حض عنوان کذف که دروغه معذارک میشه حسن بشه اما در عدل و ظلم اینطور نیست. این مرادشون نید اون قسم ثبوت که لا اختضاست مثل زرب زرب رو خب مثلا زرد به انسان این لا اگر ظلم باشه قبیه اگر تعدیم باشه حسنه خب زرب نمیست صدقه نمیست حدله لا اختضاست یه تقسیم بندیه معروفیه ایشون بهاید بگه مرادشون ازازی بودن اینه الان این عبارتیشون ناقصه ما یه نقاطه پس مراد ازازی بودن یعنی احتیاج به اندراج تحت عنوان دیگری نداره مثل زرد زرد وقتی حسن میشه که عقل باشه وقتی قبیل میشه که ظلم باشه خودش به ایفی نفسه زرد هیچ عنوان نداره یا اگرم داره مقصدیست با حفظ عنوان میشه عروض جهت مقبهه برش یا محسنه مثل صدق و اما عدل و ظلم به اصطلاح اینا از این قبیله امکان عروض جهت محسنه و مقبهه نداره مادام یستق علیه لعبد لحسنم مادام یستق علیه الظلم حسنم بله ممکن در جبگی اینجا سرگمه بس دیگری خب همین یه ده ده. ده ده. یعنی العقل یراه همه ب... ولیکن ها در حکم العقلی لعدارت المجتمع لا لذاتی صفت ذاتیتی وقت این حکم عقلیم به خاطر اخلال نظامه این نکته ایشانینه نه این حکم عقلی به ذات و ظلم باشه به خاطر حفظ نظامه به خلاف سایر الاناوی فی این به ما تکون و مع حفظه ها می‌گه کردم یعنی با اینکه قبول داریم این عنوان صدر میکنه معروضاً لغیر ماخرف طب علی لو کلی و نشر هر از شما اوشنید حالا بجای این اصطلاح رو یک دسته از عناوین اقتضای مذهب دارن یک دسته از عناوینم لا اقتضار این دوتا عنوان عز و ذل مقتضیس بدون اندراج اعضا نمیشه پس مولاظاتی بوده نمی‌گیم یعنی عوض نمیشه مادام دلمون قدیحون مادام عدنان حسنون قابل تعویز هم نیست فه انه همه محفظ عنوانه ما با اینکه که صدق صدق, صدق یا کز میکنه فه صدق المهلک للمنجی استحوازه استحوازه و ولکز بلمنجی للمؤمن یه ترتبا استحقا وازه استحقا و زم اول به لحاظ اندهارا چون اگر این شد ظلم میشه و تحت ال... بایت رب استحقاق با استهماق المرد لندراجی تحت عنوان الاحسان الالمومن و امکان لوکلی لو صدق و الکیز و نفسه هما یندر اول تحت عنوان الامل فلخون و اثانی تحت عنوان جو این چند تایزو تا دو تا یکی عدل و ظلم شد یکی صدق و کس فضلن انسائر الافعاد این قشن صدقون اچھا یہ عبارت اوازے جا وجودش قسم سوم الٹی لا تن درجه پی تحت عنوان ممدوح و مذموم این قسم سوم مثل مسائل مثل, مثل شور شوری نقشے نہ حسن نہ قبیہ اگر چیز مفید برای بدن خوردی میشه ارزش اگر چیز بزرگ خوردی میشه قبیہ پس ایشا کلی همین تصور ایشون این طور میخوام بگم مراد از ذاتی بوده به این معنا یعنی مادام این عنوان هست به نفسه کافی برای حکم به مدهوزم نه از قبیل دومه که اختضایی زم و مدهوزم داره نه از قبیل سومه فضلت انصار افعال این قسم سوم اصلا لا اختضا مثل اکل و شرب و قیام و قهود و قیام و قهود و اکل و شرب و ضرب و لبس این همه لا اختضا تحت اندراج یک عنوان پیدا بشن حسن میشن تحت عنوان دیگه قبیل میشن نه ذاتیه به معنی که از ذاتش باشه نیست عقل حکم میکنه به این معنا، عقل و ظلم اولا به عنوان هر قبیل یا حسنه ثانیه عنوانشون عوض نمیشه این ذاتی بودن این. اما عقل که به این حکم میکنه این هم به خاطر نظام حفظ نظامه نه اینکه ذاتی فی اینطور باشه مثلا تسرب در غیر که مثلا اصل فی ذاته قبیح باشه نظامی نباشه ها امین ما بحث ها این میشه که از یاباش همینه ما در بحث حجیت این مسائل مطرح کردیم چون حجیت رو یک پدیده اجتماعی گرفتیم در حجیت که تی بگه از این قبیل از قضای مشهوری خیلی مشکل دارد اما حسن رو از قضای مشهوری گرفتن معناش اینه که مرجعش به یک اجتماعیه یعنی اگر انسان به نفسه باشه به حساب قبیه ها حسنی رو درد نمیکنه. خیلی این مطلبیشان اینجاش مشکل داره خیلی خب این بحث دیگریت یعنی اون شرعیه ما اون در اول اصل عقلیه کاری به یک شرکی تکالیف فردی گذاشته نداریم اون بحث دیگریست اونجا نبوت احسام دیگریست موجزه میخواد کلامت میخواد خیلی اوضاع خاص خودش. ما همیشه از کردیم ما در بحثه اصولیمون در دردیگه اول اون رو نگه که در کل جامعه بشری ساری و نازده بعض خصوصیات شریعت در نظر میگیریم اون جامعه نداشتی. یه اجتماع نداره، بود نیست دیگه دیگه؟ اجتماع، اجتماع مراد نمیگه اجتماع. ما یعنی شما باید یک آمر و مأمور طرح کنید حجیت بدون آمر و بنده اینه. حجیت بدون آمر اما حسن و قب بدون و خب انسان فرض معمو در قاره زندگی میکنه خب اونجا ای این واقعا حسن و یه برداشتی میشه بعد این منجر شدن این که مثلا احکام مثل قصف و درک عقل قب هشه نمیکنه خیلی دور از آبادی انسان مطلب ایشان نمیشه قبولش ایش بله نه این. بله این مطلب ایشان بله. اون وقت ایشان اینجا وارد این بحث در سومه ان استحقاق العقوبه حالا اون اول که قبه تجدید قبول کردن اما عقوبه رو استحقاق عقوبت هل هو الفعل این سوال ایشون اینجوری مطرح می‌کنه از این راهی که ایشون چون آیند بحث طرح اینها ها راهای متعادلی در طرح یه طرح ایشون اینه استحقاق عقوبت انسان هل هو علی الفعل مثلا شرب ام علا مقدماتی کل عزم ولی اراده البته بها و تردید این در باب و تجربی جارب فلماسیت الواقعیه لبهدت الملاک و تحقیق حبال اول بیشون یه استقاق و مال فعله نه مال عزم لعنه لعزم علا ظلم من دون تحقق ظلم لیدر ظلمه ببینید بحث عقلی روشون مثلا از یادم کسی موکن اقدام بکنه بر ظلم دیگری فرصی این رفت سنگی ارداخ که شیشه این آقا رو کنه بعد اصلا من اینکه اصلا این آقا هموز پنجره نگذاشت اصلا خونش پنجره نازه کار شیشه داشته باشه ظلم کار نبوده ازلیسه مخلن به و ولا وقت بودش آخری بله فردا بخیه کلام ایشان این کلام ایشان در این جهد ارسم چون نکات لطیفی هم د پردا متعرض میشیم و کلمات بعضی از اعلا مرحومای خویی و یکی دو نفر دیگه را متعرض میشیم بعد ان تعالی اون نتیجه نهایی در حل قضیه ان شاء الله سال الله علیه و محمد و رحمته ما ایظمام آنچه گفتم و من نفهمی نیازه کنم کنم کنم دو کنم کنم مرموان ذاتی کتاب برخان بقول کتاب ایسا بوجی که آجیم در منزول داری ذاتی شهین لبیق معلوم و کان اگزن بگیم از سبوت لب عرضی یا و این ذاتی کتاب برخان شما جنس و خط خوشه و این بسم جنس و وقت ذاتی و کتاب برهانم هم هیچون ذاتی کتاب برهان هم این که از مقام ذاتی امتظار شد. نه قیاس هم. مثلا توقیت سخت ذاتی می چرا؟ چون از ذات سخت امتظار بگرد. من در نظر پس از این ذاتی اما اگر امکان. مثلا این ممکنه. این ذاتی شده. میگه ایشون وقتی من میام کتابی دیگه.